أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السلام الصلاه والسلام على نبينا وآلِه طاهري خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم صبح به خیلی ان میکنم انشاءالله که به لطف خداوند متعال از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که با انایت باری تالا از هر گونه گزند و آفتی هم به دور باشید ما در خدمت شما رسیدیم به بحر رجز و من بحر رجز رو برای شما فوضیه دادم حالا برای خاطر اینکه وارد نمونه ها بشیم به یک خلاصه از مطلب قبلم رو خدمت شما دوباره عرض میکنم بعد انشالله وارد نمونه های بهر رجز میشیم. گفتش که بهر رجز شدیدش اینه. فی آب هواره لع ارجازه بحران مستفعل سهولو. مصطفی آلن، یعنی مصطفی در بره لجز در بحرهای لجز است آسان بحریست که سهل میباشد مستفعلن مستفعلن مستفعلن پس بحر رجز از شش تفعیله مستفعلن تشکیل شده سه تا در صدر بیت و سه تا در اجاز مصطفی علون مصطفی علون مصطفی علون مصطفی علون مصطفی علون،, مصطف علون،, مصطف علون بعد تغییراتی که تو این بهر بود یکیش ذحاف خبن بود چون زحاف همه جا هم میاد و ما زهاف قبل و قبلن داشتیم مخبونه شدن تفعیله رو که حصف حرف دوم ساکم بود و هم که به مستفعلن داخل شه اونو تغییرش میده به مفاعلن و این زهاف به همه تفعیله های بحر داخل میشه هر شیشتاش چه در هش باشه چه عروض باشه و چه ضرب خب زحاف قبل مستفعلن میشه مفاعلن در هش و عروض و ضرب داخل میشه و تفعیلهاییم که بهش داخل شه بهش میگن مخبونه خب چون زهافم هست لازم نیست شاعر اون رو ادامه بید دوم ظحاف تی بود که بهش می گفتن مطبیه به اونی که داخل شه و اون حصف حرف ساکن چهارمه حصف حرف ساکن چهارم و موقعی که داخل بشه بر تقییل مستفعلن علون مصطفح. یعنی فارغ حذف میکنه یا غیرهای لون مفتای لون این غالباً در هش و عروس پیدا میشه یعنی در از زرب نادر پیدا بشه غالبا در هش و عروس این همچون چون زحافه قابل ادامه نیست سوم زحاف خبله و اونی که بهش داخل شه بهش میگن مقبوله. میگه این هو زحاف قبیه اون دیم این زحاف زحاف قبیهیه یعنی معمولا شعراء این رو به کار نمیبرد و توی آهنگ موسیقی هم گوشنواز نیست وقتی به کار بره خب این چی هست این ذحاف خبل که مخبوله بشه چون قبیحه گفت قد و گاهی چون قبیه رو زیاد به کار نمیبرند که ندیل الحق و مصطفعلون نادرن فیغیر و هایلان متعلن. اونو تغییرش میده به متعلون متعلون یعنی دوتا یو اول میشه یه سبب سقیل بعد یه یوی خط تیره میشه یه وتد مجموع میگیم این چجوری دارد شد؟ میگه خب اگه دقت کنید میبینید که اون دوتا زهاف با هم اومده هم حرف دوم ساکن شده حذف شده هم حرف چهارم ساکن حذف شده و این عبارت است از اینکه دوتا زهاف خبن و تی در اینجا با هم جمع شده شده متعلون بعد میگه که توی اورجوزه، ارجوزه یعنی <تصفيق> قصیده ای که بر وزن رجز سروده شده گفت توی ارجوزه آقای ابن مالک که هزار بیت در باب نحو گفته و نه نحو این رو ما زیاد میبینیم توی این هزار تا نه اینکه که زیاد میبینیم یعنی مثلا فرض کنید دیویستاش این طوره ولی خب مثلا فرض بفرمایید که نگاه که بکنی ممکنه سیچل بیت پیدا بکنی که به این شکل این نوع از ذهاب رسیده به طور کسیر قد جاعب کثرتن یعنی کسیرن فی الفیت ابن مالک قلیم حالا یه نمونه شو مثال میزنی از الفیت ابن مالک بله همه داشت که بحث مورب و مبنی رو میکنه میگه و کنیابتن این فعله بلا تاثرن و کفتقا این اصلا و که نیابتن فعل بلا تحصولن بلا این طرفه تعسرن اون طرف بیتش بیت مدور هم هست یک کلمه نصفشیم و رفتده نصفشو و که افتغار اصلا. بعد که تق... تقطی کردیم این بیت رو در اومد که متعیلون مفاعلان مفتعلان آه تون مصره اولش و ما دیدیم که هر ستا زهاف متعلن خبل بود مفاعلن خبل بود و مفتعلان تی بود مفتعلان تی بود هر ستا یعنی ما اگر همین یه مصره از ابن مالک رو تو ذهن داشته باشیم هر تا زهاف رو آورده توی همون یک مصرای اول خودش هر ستاش رو مرتکب شد چهارمی علت قطع بود این علته علت دو دو و عروضه درست شد و علت واجبه که شاعر ادامه بده اون رو یعنی استمرار بده تو ابیات بعد علت قطف و اون تفعیلهی که داخل بشهش میگن مقطوعه و هیه حذف و ساکن الوتد المجموع و اسکان ما قبله حذف ساکن وتد مجموع و اسکان ما قبلش ساکن وطد مجموع رو حذف کنیم مص تف الان. الان ما وطد مجموع رو ساکنش رو حذف کنیم وطد مجموع اون یو و خط تیره آخره تو مص مستفعلون مس تف الان یه خط تیره تف یه خط تیره این دوتا سبب خفیف ها ایج. الون این الان وطد مجموعه این وطد مجموع ما بیایم ساکنش رو حذف کنیم اون حرف بعد ما قبل ساکن رو که متحرکه الون الون نون رو حذف کنیم اون لام رو الو لام رو هم ساکن کنیم میشه ال بعد که شد ال میشه قد تیره الون میشه ال میشه قد حالا حال علت قطع اینه که وتد مجموع تبدیل میشه به سبب خفیف گفت هست به ساکن وتد مجموع و اسکان ما قبلش و هنگامی که لاحق بشه به مستفعلن تغییر میده اونو به مفعولان تغییرش میده به مفعولان بقید یلحق و زحاف الخبنه بقید یلحق و الخبنه مال من غلط نمشته میشونه بقید یلحق و زحاف الخبنه حاضه تفعیلت گاهی اوها خب به همین تفعیله مفعولون مقتوعه از داخل میشه و قد یل حق و زهاف الخبن. زهاف چی بود دو این حرف ساکنه هست میکن مف اولان اون فاع هست میشه میشه فعولان و قد یل حقوقت هم یعنی گاه قد یل زهاف الخبنه ها زهد تفعیلت المقتوعته فیغیرها فعولون زهافش قابل ادامه نیست درست شد اما او علت قدعش حالا از الان درس شروع میشه یعنی انواع رو میخونیم میگه که انواع و بهر رجز انواع بهره رجز یعتی الرجزو تامن و مجزو ان و مشتورن و منحوکن رجز میاد تام یعنی مستفعل مستفعل مصطف, علون، مصطف, علون، مصطف علون. مصطفعلون مصطفعلون مصطفعلون 6 تا تو مجزوء میاد یعنی مصطفعلون مصطفعلون مصطفعلون مصطفعلون دو تا دو تا مشطور میاد مشطور یعنی نصف شده یعنی سه تا مصطفعلون داره سه تا شده این سه تا میشه یه بیت نه اینکه یک و نصفی این قرار یک و اون طرف. دیگه ستاش رده رد هم میشه یه بیت مصطف علون مصطف گاهی اوقات منحوکه یعنی دیگه خیلی لاغر شده دو تا مصطف میشه یه بیت مستفعلن علون یه بیت دوباره مصطف علون،, علون یه بیت نوعه نوشتن این هم دیگه وقتی که مشتور هست و منحوک دوتا و ستا هستن میگه رو هم نیست به شکل زیره هم نشون نو. و الیکه شرحه ها الیکه گفتیم اسم فعله یعنی خوز و بگیر شرح این اقسام رو شرح این انواع رو یعتی از مجزوتام من و مجزوان و مشتوران و منحوکن و الیکه شرحه ها. و تو الان شرح این رو بگیر درست شد یک ار رجزو تام یک ار رجزو تام یعطی ار رجزو تامن و مجزوهن و مشتورن و منحوکن و ایلکه شرخه یکش رجز تام یاتی الان نوعین تامش دو نوع میاد خب معلومه یکیش صحیحه یکیش مقتوعه نگاه کنیم ارجزوات تام مو صحیح یعنی و علت قطع توش نیست ارجزوات تام مو المقتوع یعنی توش درست شد رجز و از تام و از صحیح رجز تام صحیح ما ماکان تفعیلت و عروز هی الان عروزش مصطف علون ستای اول مستفعلن مستفعلن مصطف و زربهو مالا من غلط نوشته, نوشته زربتون و ضربهو مثلها ضربش هم هم اینطوره مصطف علان مصطف علان پس؟, پس رجز تام صحیح عبارت شد از شیشتا مصطف علان شیشتا مصطف علان مصطف علان مصطف مصطفعل المصطفعل مشتق این راجزه تام صحیحه حالا آیا اینجا بیت مسرع با غیر مسرع فرق میکنه نه چون عروض مصطفعل ضربا مصطفعل فرقی نداره نگاه کنید الرجز و آتاما هو ما مکان تفیل و عروزهی علام مستافعلان و زاربوهو مثلها نه و قول المتنبی مثل قول جناب آقای متنبی میگه و شام مخن مند جبال فردن که یافوخ البعیر الاسیدی زرناهو للعمر لذی لم یو لسید و نوزهت و تمردی بهترو میبینید که خیلی زربا هنگشم تند و قشنگه و شامخن من الجبال عقودی فردن که یافوخ لبئیر العسیدی زرناه للعمر لذی لم یعهدی لسید و نزهت و تمردی خلا بریم اول به رو بفهمیمش بعد انشالله این رو تقریم میکنیم میبینید که ساده هم هست و شامخن شامخ یعنی بلند شامخ یعنی بلند ما خودمون تو پارسیگاه با میگیم مقام شامخی داره یعنی مقام عالی و بلندی داره اینجا شامخ چون میدینه که این واب واب روبه است و شامخن روبه سر نکره موسوفه در میاد نکره موسوفه اینجا موصوف افتاده صفت جاش نشسته و شامخن یعنی وجبلن شامخن وجبلن شامخن یعنی چی؟ یعنی چه کوهی بلند چه وسا کوهی بلند مرتفع من الجبال صفت برای اون شامخ یعنی چه بسا کوهی بلند از این کوه ها منرجبا چه بسا کوهی بلند از این کوههایی که در طلب هستش اقعد ودی عقود صفت بعدی است اگر برای کوه به کار بره العد و منل جبان عقود در مورد ها یعنی از ظاهب و سما از سما یعنی رفته به داخل آسمان ما میگیم چی سر به فلک کشیده خیلی بلند از ظاهب و الاس سما من الجباله. یعنی از ظاهب و الاس سماه چی شد تا اینجا؟ و چه وسا کوهی از همین کوها سر به فلک کشیده فرد فرد یعنی منفرد الفرد یعنی المنفرد یعنی المتوحد یعنی منحصر به فرد حتی الفرد من الناس الفرد من الناس یعنی المنغت اون نزیر یعنی اونی که نزیر نداره نزیره. لا نزیره یعنی فی جودته اونی که تو خوبیش مانند نداره میگن الفرد من الناس یعنی المنغت اون نزیر الذی لا مفیل له فی جودته تو خوبیش پس این فردن صفت بعدیه چی شد تا اینجا و کوهی بلند از این کوهها سر به فلک کشیده بینظیر یعنی جای دیگه مانند نداره این این صفت بعدیست بیر هم یعنی شطر که یافوخ بیر یافوخ اگر سر شطور دیده باشید یه حالت برآمدگی داره اون بالاش که مثل جایی که جای شاخشه انگار یه حالتی داره که انگار از اونجا مخواد شاخ بیاد مثل حتی سر انسان این قسمتی که مو گرد میشه این وسط سر اون شطور هم اینجا رو داره که قسمت وسط این سر حیوان رو اگر نگاه کنید یه قسمتی در اون جای شاخش که یه حالت قلم به مانند داره اونو میگن یافوخ شو این استخوانهای جمجمه شطور اونجا جمع میشه اون قسمتیه که گفتم حالتیه که جای در اومده دوتا هم داره یکی این طرفه یکی این بره یافوخ که یافوخ البعیر این کوه بلند بینظیر مثل سر شطوره مثل اون قسمت با خودمون وسط سر شطور است اونم الاسیدی الاسید صفت بیره اسید یعنی المتکبر یعنی المذهب و به نفسه مذهب زهیه به نفسه یعنی تکبر کرد المذهب و به نفسه یعنی خودپسند با دو شش. یعنی متکبر چرا گفته که مثل وسط سر شطر متکبر چون شطور اگر متکبر باشه سرشو بالا میگیره خب وقتی سرشو بالا میگیره آه شما تصور کنید یه شطوری متکبری سرشو بالا گیده اون قسمت وسط سرش اون جای شاخش خیلی دیگه همچین اوج میگیره اون بالا وایی نیسته بله اگر شطوری باشه که متکبر نباشه شطوری نره متکبری نباشه این سری کم پایین کنه اون قسمت ملاج بگیرید حالت و افقی پیدا میکنه به خاطر همین گفته مثل شطور متکبر مثل طوق سر شطوره متکبر. این شیشتا تا صفت رو برای کوه آورد. یک کوه. 6 تا صفت براش آورد. و این صفات رو که پشت سر هم میارن بهش میگن تنسيق و صفات یعنی پشت سر هم یعنی تنظیم. و تنظیم صفات پشت سر همه. و شامخن من الجبال اقدی فردن که یا فخل و ایرهسیدی ذرناخ و ببینید این و شامخن یعنی و جبلن شامخن اون جبلن لفظاً مجرور به واوه ربط است. محلاً مرفوع مبتدا است. خبرشه. لفظاً مجرور، محلاً مرفوع مبتدا. شامخ صفت اول، منال صفت دوم، عقبت صفت سوم، فرد صفت چهارم، کیافوخ صفت پنجم اسید هم که صفت بعیر بود پنجتو صفت او برای اون جبل کو شامخ بلنده از همین کوه های دمشق و عقود سر کشیده است فرد بی‌نظیر مثل توق سر شطور متکبره زرناهو ما یک چنین کوهی رو دیدیم زرناهو زار یزورو زرناهو هو میخوره به اون جبل شامخ دیدیم اونو امر الذی لم یعهد ما دیدیم این کوه رو برای موضوعی که معهود نیست برای موضوعی که معهود نیست یعنی متعارف نیست برای یک موضوع غیر معمولی زرناه ولل امر لزیلم یا اونو ما دیدن کردیم این کوه رو بالا رفتیم و دیدیم برای یک موضوعی که معهود و معروف نیست خب یه چنین کوهی اگر یه کسی بخواد بره معمولا یا باید از دست دشمن فرار کنه بره بالای این کوه ولی این کوه جایی که انسان بخواد بالا بره و بر نکه او بیسته نیست میگه ما رفتیم لیل امر لم یاهد اون چی بوده اون لیل امر این لسید بدل است از اون لیل امر اون امر غیر معمولی که ما برای او به سراغ این کوه رفتیم چی بوده لساید برای شکار و نزه و برای تعریف تفریح و تمرد و برای اینکه، قودمون نشون بدیم که ما بر این کو هم میتونیم غالب بشیم تمرد علی القومه یعنی عصا عنیدن مسرن یعنی عصا با عین و صاد یعنی تمرد علی القوم تمرد کرد بر قوم یعنی بر اونها اوسیان کرد با دشمنی و اصراری که داشت اصاعنیدن مصف تمرد علش شی؟ اینجا شیه، قوم نیست تمرد علش شی؟ یعنی تقا علی یعنی برو غلبه کرد بقا علی تقیان کرد بره. خب ما میگه خواستیم نشون بدیم این کو هم زیر پای ما نمیتونه مقاومت کنه ما اگر به این بلندا هم چیزی باشه بر او قلبه میکنیم. کنیم پس زرلاه وللعمر لذیلم یا آهدی این لسید بدل برای للعمر به خاطر همین لام تکرار شد لسیده و نوزهته جای سیده و تمرد خب شعر رو من چون شعر آی متنبی بود و بحث متون نظم و نصرم توش قشنگ بود شعر رو برای شما به طور کامل گفتم هم صرف و لغت و نهوش گفتیم هم مواردش رو برای شما بیان کردیم حالا نگاه کنید بهت اول وشامخن وشامخن منل جبا لعقودی و شامخن مفایلون منل جبا مفایلون لعق ودی مفایلون هر ستا مخبون است خب باش ما گفتیم زحاف خبن داخل میشه هم در هشف هم در عروض و هم در زر اینجا هم در هشفش الان فعلا هست هم در عروضش فردن کیا مصطف علان سالم است فوخل بیی مصطف علان سالم است ول عسیدی مصطف علان سالم است یا ارستاش سالمه ضربش هم سالم اومد اون زهاف خوابش داخل نشد سالم هم هست این لطقت توش نیست و شام خند منال جبا هرسه هر سه مفاقل فردن کیا مصطف علان فوخن بئی مصطف علان رل عسیدی مصطف علان هر علان و سالم است این دوم لل زور ناهل مصطفی آلو، زور ناهل امر لذی، امر لذی مصطفی لم یا آهادی مصطفی لم یا مصطفعلون هر س تو مصطفعلون مصطفعلون مصطفعلون سالم است اون تو مصرع اول هر س تاش داشت مفاولن مفاولن مفاولون بیت اول. این توی مصرع اول بیت دوم هر س سالمه زرناه ولل مصطفعلون امر النزی مصطفعلون لم یهدی مصطف آرام لس سیده ون لس سیده ون مصطف آرام نوزه هت ود نوزه هت ود نوزه هت ود مفتیلون مطبیه است تمردی تمردی مفایلون مخبون است پس در مثل دوم بیت دوم یه دونه مصطف علان داریم لسید ون مصطف علان نوز حت ود مفتحلون است تمردی مفاعیلن مقبون است نگاه کنید چی میگه میگه الملاحظه فیها زین البیتین اونی که شما در این دو تا بیت میبینین اینه ان ها والخن قد دخل علی تفعیلات شطر الاول من البیت که ملازم میکنید فیها زین البیتین در این دو تا بیت این ان هاف الخبن قد دخل تفیلات تفعیلات الشطر الاول به تفعیلات شطر اول داخل شده از بیت گفتن ارس توش مفاهلن مفاهلن مباقتل الملاحظ فی ای قد دخل علی تفعیلات شطر الاول من و علی تفعیلت ضرب من بیت سانی تمر رو دی به داخل شد و انه زحافت تی و زحافت تی هم قد دخل علت تفعیلت الخامس من بیت سانی از بیت دوم به تفعیل پنجمش هم زحافت تی داخل شده مطمیه نوزهت ود نوزهت ود این هم مطمیه است خب این تمام شد ما دیدیم که رجز تام صحیح بود چرا گفت صحیح چون در عروز و ضربش چیزی که بخواهد ادامه پیدا کند وجود نداشت مستفعلان بود و هیچ چیزی که قابل ادامه باشد وجود نداشت حالا رجز تام مقطوع اینجا طوره. علت قطع بهش داخل شده رجز تام مقتوع علت قطع بهش داخل شده دوشو. یعنی مصطف شده مفعولان بعد گفتیم این میتونه بهش ذهاف خبرم داخل شه بشه فعولان الرجز و اتامه المقتوعو لجز تام مقتوع کدومه و هو ما کانت تفعیلت عروزهی مستفعلن اونیه که تفعیله عروزش مستفعلنه پس مستفعلن مستفعلن مستفعلن تفعیله عروز مستفعلون و کان هو مفتوعه اما ضربش مفتوعه مفعولن پس اینطور میشه وزنش مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مصطف علان مفعولان بعد این مفعولان ادامه پیدا میکنه حالا سؤال اگر اینجا بیت مسرد داشته باشیم با بیت غیر مصرف فهم رو بله فهم کنه اونجا باید عروض دابه زربش پس فاس مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مفعولن درست شو این مفعولن دیگه تا آخر ادامه داره رجز تام مقتو و, و ما کان تفعیلت عروزه مستفعلن و کان ضربه او مقتوعا مفعولن مانند قول این شاعر نگاه کنید نه با شار یا قیرتن اوهب بها و یا هون اقا من اقا من عبیرهل فواهی دملی کما انت جهیمن باردا و جنتا من لهب نفاهی میگه یا غیرتن ای غیرت این قیرتن منصوب شده چون نکره موصوف است یعنی منادای شبه مضافه، نکره مصفه است، مثل یا آل من لا یو علم، تو دعای کمه این اوه ها صفت قیرتنه، جمله بعد از نکره میشه صفت. اوها برمیگرده به قیرتن، یعنی ای غیرتی که دوست میدارم او را، غیرت یعنی این انسان نسبت به معشور خودش، ناموس خودش، بخیل باشه، حاضر نباشه، اهدی تو چپ نگاه کن. ای غیرتی که دوست می‌دارم او را و ای عشقی که و یا هون عشقی که ای عار من عبیر حل فواهی جمله صفت هونه ای عشقی که غیرت می‌ورزم از عبیر از بوی خوشش فواه که منتشر شده منتشر است الفواه صفت عبیره هوی عبیرههی برمیگرده به هون این عقارو من عبیره هل. فواهی صفت هون پس ای غیرتی که آشقم او را دوستش میدارم و ای عشقی که غیرتمندم من نسبت به بوی خوش آن عقارو من عبیره لفواهی خوب پس گفت ای عشق که من کشته تو توام ای عشق که من دوستت میدارم و ای عشق که من از بوی خوش او به غیرت در میآیم دملی دام یه و دم فلان. دم لی جهی من باردن کما انت یعنی کما انت انت همونطور که هستی باش همونطور که هستی خب چطور بوده؟ جهی من باردن جهنمی خونک باش برای من همانطور که هستی جهی جهنمی سرد چون دوستش داره میگه جهنمه سوزان این عشق اما جهنمه سرده به قول خودمون میگه که رنجش رنج شیرینه رنج رنجه اما این رنج از اون رنجهایی که میبره عاشق وقتی که در عشق میسوزه از این عشق لذت هم میبره میگه دملی کما انته جهیمن باردن و جنتن اتوه جای جهیمنه و باش بهشتی که من لهب نفاهی از شعله پروزانه لحب یعنی شعل آتش بهشتی که آتش سوزانه جهنمه جهنمه سرد باش و بهشته سوزان آه. عشق بهشته اگه بهش برسه اما چون نیست میسوزونه عشق جهنمه اما جهنمیه که علاقه رو داره داره با جان و دل اون رو دنبال میکنه و از جهنم دل نوازه. دملی کما انت جهی من بارا همونطور که هستی ای عشق باش کما انت یعنی کما انت انت ای عشق خطاب به عشق میکنه به اون هوا ای عشق همونطور که هستی باش خب اونطور که هست چیه؟ اینه جهی من باردن آتشیست جهنمیست است خونک بارد و بهشتی است سوزان و جنتن من لهب من لهب صفت جنتن و جنتن من لهب نفاهی خوب فکر میکنم شعر رو فهمیدید در غزل سروده بود یا غیرتن اوحب بها و یا هون عار من عبیر هل دملی جما انت جهیمن باردا و جنتا من لهب نفر یا غیرتن مصطف علن اوحب بها مفا و یا هون مفا و یا هون مفایل اغار و من مفایل ابیر حل ابیر حل بایی بگه ابیر حل ابیر حل نیست عبیر هل اقا رومین عبیر هل فواهی اون خل باید بشه هل عبیر هل مفاعلون فرق نبکنه فواهی مفعولون الان ببین شاهد سر این مفعولون آیا اون ویا هون که مفاعلون اومده میتونست مصطفیلون بیاد بله همه این مفاعلون ها میتونست مصطفیلون بیاد فقط ای یه این یه آخری فواهی این مفعولون آمد یا غیرتن مصطفعدان اوهبوها مفاعلان و یا هون مفاعلان اقارومن مفاعلان امیرهد مفاعلان فواهی مفعولان دوم لی کما دوم لی کما غلط نوشته کتاب من دوم خط دیره لی خط دیره کما یو و خط دیره نمیشه مصطفعلان مطویه نیست مصطفعلان ان ان تا جاهی این بله مفتعل ان تا جاهی موف تعلن موف تعلن من باردان مستفعل پس اولی مستفعلانه به غلط نوشته مفتعل نوملی کما مستف الان غلط و جنن و جنن تن من دهابن مفته نفاهی مفعول ام اشاره سر این نفیه اون بقیه میتونست همش مصطفالان هم بیاد حالا اگر بعضیش مطویه یا مخبونه آمده زهاف، دملی کما انت جهی مفتعلان من باردن مصطفالان و جنتن مفاعلان من لهبن مفتعلان مطویه است نفاهی مفعولن مقتوع است همین باعث شده که این بشه رجز تام مقتوع رجز تام مقتوع نگاه کرد الملاحظه فی هاذین البیتین اونی که ما میبینیم در این دو تا بیت اینه انزهها فلخبنه قد دخل علی تفعیلت ثانیت و ثالثت و رابعت و خامست فلویت الاب اونی که دیده میشه در این دوتا بیت اینه که ذهاف خبل داخل شده بر تفعیل دوم و سوم و چهارم و پنجم در بیت اول این که زحاف تو تفعیل اول درست شد نیامده تو بیت اول اما توی بیت اول توی دوم و بله سوم و چهارم و پنجم درست میگه وارد شده الملاحظ و فیاضای نلویت این انزه الخبر قد دخل على تفعیلت سانیت و سالست و رابعت و خامست و علت تفعیلت ار رابعته فلویت ثانی در تفعیل چارم بیت دوم اومده و جنتن مفاه الان و انه زهافت تی و زهافت تیم قد دخل علت تفعیلته از ثانیته علا غلطه تو اون گفتیم اولا اصلا مصطفی غلط نوشته و انزه هافت قد دخل علت تفعیلت از و الخامزت فلویت داشت و علت بعد هم ما میبینیم که وارد شده بر زرب بیت و زرب بیت شده مفعول خب این کامل شد می خب رجز تام خوندیم که یکیش صحیح بود و دیگری مقتوع صحیحش هم عروز هم ضرب مصطفعلون بود مقتوعش عروزش مصطفعلون بود ضربش مفعولون بود و تمام شد رجز مجزوع رجز مجزوع الرجز و یعنی یه مصطف علون از این ور افتاده یه مصطف علون از اون ور بیت زربش تندتر شده شده مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف علون و یقوه ی تعلف و من تفعیلت مصطف تشکیل شده از تفعیلی مصطف علون تتکرد رو عرب همه الاتند که چهار بار تکرار میشه و تفعیلت و عروضهی و ضربهی تعتی الان علا مستفعلن هم تفعیله عروضش هم تفعیل زربش میاد بر وزن مصطف و هاذا نوع اون به شعر العرب این نوع در شعر عربی شروع داره خوب هم صحیح مصطف هم ضربش تون تره تا تفعیله داره دوتا این بر دوتا اون برد. برای شعرها شعر گفتن در این راحته لذا شعر در این قالب زیاد سروده شده پس الرجز رجز المجزو و هو علف و من تفعیلت مستفعلن تتکرر و عرب و تفعیلت و و ضربهی تفعیله عروزش و ضربش تعتی علا مستفعلن علان و نوع اون پر شعر العربی این شیو داره در شعر عربی نه به قول جلال الدین رومی مثل قول جلال دین رومی جا عربی و البطر زال او والمطر من فضل رب عندو كل الخطایا تختفر ببینید من خوندم ربن جا الربيع والبطر زال الشتاء والمطر من فضل رب ان کل الخطايا تختفد جا اربي او البتر این جمله خبریه برای اظهار سرور اومده تو زمینه قبل که قبول شدم قبول شدم قبول شدم ولی شادی میکنم مثل جا الحق وقتی که فتح مکه شد به پیامبر اکرم راه میرفت و اینطور شعار میداد جا الحق و ذقل با انل با لگان ازحققا میگه جا عربی او البتر بهار آمد و سرمستیش جا عربی, عربی یعنی اون بهار مورد انتظار مثلا که زمستان بیاد آخرای زمستان همه انتظار بهار رو میکشن تا بهار برسه، جا عربی و او البتر اون بهار مورد انتظار رسید و اون سرمستیش البتر بهار و سرمستی آن فرا رسید جا عربی و البتر زالش شتا و ولمتر یعنی وزالش شتا و ولمتر زال یعنی انتقل رفت و اون زمستون و گلوشلش بارانش رفت زمستون و گلوشنش بارانش رفت بهار و سرمستی و زیبایی گلهاش رسید مثل جا الحق و زهق الباطل جا عربی و زال شتا و ولبتر. زال اینجا تامسنی انتقل از شتا و ولبتر. نگاه کنید جا عربی و زال شتا این تو شعر جایزه که حرف عطف بیفته این بوده جا عربی اول بطر و زال مثل جا الحق و زهق الباطر و زال شتا اول بطر من این جا عربی منفضله زال شتا منفضله این دوتا نزا کردن سر این منفضله هر دوی اینها چه آمدن ربی و چه رفتن زمستان از لطف پروردگاری است من فضل ربن از لطف پروردگاری است که کل كل الخطایا کل اضافه شده به الختایا مبتداست تختفر و ان دهو متعلق به تختفره تختفرم خبر کله این جمله کل الخطایا تختفر و اندهو صفت ربه هر دوی اینها از فضل پروردگاری است که همه گناهان بخشیده می شود در نزد او فقط یه اندهو مقدم شده مفید حسره همه این آمدن بهار و همه این رفتن زمستان از لطف پروردگاری است که تمامی خطایا خطیعه ها خطایا جمع خطیعه است، تمامی خطیعه تمامی سیعات تختفه رو بخشیده می شود اندهو نزد او فقط همه این ها از لطف است که گناهان در نزد او بخشوده میشه و منفض لرب نه و کل خطا یا تقدر. حالا نگاه کنید بخونیم ببینیم چطوره جا ار لبی باش علون باشه ول بتر مفاعلون باشه مخبول است زال شتا مستفعلن او ول متر او بالمتن مفائل این تا اینجا هیچ مشکلی نداره من فضل رب من فضل رب غلط نوشته میشه این مستفعلونه من فضل رب نمی‌دونم این چی شده بوده که تو این بحر رجز این تو الالت قلود زیاد تو منفضل رب مفا ایلون ببین اگر بوده میخونده منفضل رب ب... رب ب... یعنی ربی رب پروردگار من خب در صورت که این منفضل رب بن، یعنی پروردگاری عظیم و شن نکره است که این صفتو دارد این نکره منباب تعظیم از فضل پروردگاری عظیم و شن که همه گناهان در نزد او فقط بخشود است این رب بنه اگه بن باشه بن اندهو میشه مستفعلون پس هم اولی هم دومی درست شد مستفعلنه مفایلن نیست من فضل رب مستفعلن بن عندهو مستفعلن کل خطا مصطف علون یا توق تفر مصطف علون آخرش چواد مثال خوبیم از هر چهار تاش مصطف علون من فضل رب مصطف علون بن ان دهو مصطف علون کل خطا مصطف علون یا توق تفر مصطف علان بریم ببینیم چی گفته میگه الملاح از و فیازهی اونی که ما با چشمون ببینیم تو این دوتا بیت اند زهاف الخبن قد دخل علت تفعیلت از ثانیت و رابعت ملالویت بله زهاف خبن داخل شده بر تفعیله دوم و چهارم از بیت اول و علت تفعیلته میگه ال و سانیت من البیت بیت سانی این غلطه اینجا باید بگه ولم یدخل فل بیت سانی ولم یدخل هاز از زهاف فل بیت سانی ولم یدخل هاز از زحاف و فل بیت سانی. و این زهاف در بیت دوم اصلا داخل نشد و ما این رو دید. خوب تمام شد رجز ما به شکل مجزوع هم دو بیتی از ملای رومی ابن رومی جلال الدین خوندیم درست شد بیایم سر رجز مشتوره رجز مشتور رجز مشتور یعنی سه تا مصطفیلان هست. سه تا مصطفیلان ال رجز المشتور و حویت علف و من تفعیلت مصطفیلان و این گفتیم سه تا نیست که مثلا یک و نصفی مصطف مصطف این طرف افتاده باشه علون اون طرف افتاده این نیست بلکه سه تا مصطف علون مصطف, علون مصطف علون شده یه بیت رد دهمه دوباره سه تا مصطف یه بیت دیگه است درست شد؟ یعنی در واقع هر بیت ما سه تا مصطف علونه. و رجز المشدور و هوه یه و من تفعیلت مستفعلن رو و سلا که سه مرتبه تکرار میشه و هو اکثر و انواع رجز شیوعه این از همه انواع رجز شیوعهش بیشتر چون سه مستفعلن میگه میشه یه بیت دوباره سه مستفعلن یه بیت دیگه باشه و اینها به شکل پله ای نوشته میشه یا به این شکلی که الان تو کتاب می بینید الل لی سممت نوع میهیدرهیه بیت کلیس قابات ولیزلغسره یه بیت اکی و کن به سیر کیل صندره یهیت دو سه بیت دیگه اینطوری و معمولا اینها به شکل مقول خودمون جز در میدان جنگ یا در ارائه یک کالا در مثلا بازار اینطوری به کار میرفته؟ بعد چند تا بیت بیشتر نبوده و این هی تکرار میشد از رجز مشهور و هوی تالعف من تفعیلت مستفعلن تتکرر سلاسن الواته و هو اکثر انواع رجز شروان این از انواع رجز که نگاه کنیم شرویش از همه بیشتره و تفعیلت عروض هی و ضربهی هی اینجا یه دونه بیشتر الان نگاه ان الذی سمتنی امی هیدره ای هیدره این این ان الذی می این میهدره ای می ای می که تفعیل سه‌ومه این هم عروض هم ضربه چون این ستا یه بیت میشه این هم عروض حساب میشه هم زرب از ضرب و عروض دیگه دوتا تا نداره یه دونه است یه دونه هم بگیم زرب هم عروزه و تفعیلت و عروضهی و ضربهی واحدتون و یعنی تفعیلت و سالسه اون تفعیل سفا هم ضرب هم عروز. و یعتی تیالا انواع این اهم بها. چند نوع میاد این رجز مشتور اهمش اینهاست هاست الف رو میگه بعد بر رو هم خواهد گفت الفش میشه صحیح بهش میشه مقتوب شما یه علت فقط داشتیم دیگه مشتور و صحیح مشتور و صحیح این چی کدومشه؟ بعد مشتور مقتول داریم المشتور و صحیح و هوه ماکان تفعیلت و ضربهی که همون تفعیل عروزم هست مستفعلن نه و قول امیر علی علیه السلام مانند کلام امیر المومنین علی ابن طالب علیه آلاف و تعیید و سنا. این رجز رو امیر المومنین در مقابل مرحب خیبری خوند مرحب خیبری آمد گورپیکری بود هیچ کس در مقابل او نمیتونست قد علم کنه امیرالمؤمنین در مقابل او ایستاد و او رو به درک واصل کرد و اسلام به واسطه شمشیر او در این جنگ پیروز شد این شعر و این رجز رجزی است که امیرالمؤمنین در مقابل او خواند یا انال لذی من کسی هستم سمت نه یعنی سمت نی اون یا به خاطر وزن شعر افتاده کسره برش دلالت میکنه اون نون اون اونو به سمت بوده شده سمت نه امی فایل سمته هیدره مفعول دوم صمتنیاست این صمتنی امی هیدره سلهی اللذی انا الذی ثمتنی هیدره من کسی هستم که مادرم اسمش رو گذاشته هیدره یعنی شیر انا الذي سمتني امي هيدره ايد سله ايد سله اونی که کثیر هست و دیاسیه کثیر هست و دیاسیه زمیر قایبه مثل یا ایها اللذین امنوا او وا درست گاهی اوقات به شکل زمیر مطابق میاد یعنی متکلم یا مخاطب اما این کسیر نیست قلیله مثل اینجا مثل این که بگیم یا ایوهال لذیر آمنتم ولی اگر مثلا اسم ظاهر بیاد دیگه هم قلیله هم غیر قیاسیه ولی اگر زمیر باشه مطابق باشه قلیله اما قیاسی هست قاعده داره انا الذی ثمتنی باید میفرمود انا الذی ثمته امی گفت عمهو هیدره انا سمتو هو عمه هیدره ولی فرموده انا الذی ثمتنی امی هیدره حالا چرا امیرالمؤمنین از این لغت دوم استفاده کرده لغت پایینتر و نفر انن الذی سمت ها امه هیدره به این وقتی بری نگاه کنیم این اون شخص اومد رجز خوند خون انن الذی سمت امی مرحبه من کسی هستم که مادرم اسمشو گذاشته مرهب هامیرالممنین آمد جواب داد عنا الذی ثمتنی امی ثمتن امی هیدره در جواب او این گفته شد: عنا الذی ثمتن امی هیدره که قاباتن من مثل شیر جنگلها هستم کلیس قابات قلیز که پشت محکم دارد قلیز القصره صفت لیسه من مثل شیر جنگل ها با پشتی محکم و استوار هستم. قلی انا الذي اومی هیدره کلیس قاباتن قلیز القصره اکیلو قال یکیلو یعنی کیل کرد وزن کرد کیل میکنم شما رو پیمانه میکنم شما رو به سیف یعنی با این شمشیر یعنی شمشیر خودش داره. با این زلفه شما رو پیمانه میکنم کیل سندره مثل پیمانه کردن ترازوی رومی ترازوی درجه یک میزون یعنی همتون تیکه تیکه میکنم مثل اینکه یه گوسفندی رو یه کسی بیا تیکه تیکه کنه مثلا میخواهن نظری بدن قصابش خیلی ماهر باشه با کارد و چاقو اینا رو تیک تیکه میکنه نگاه که میکنی میبینی همه رو مثلا کیلو یک کیلو قشنگ تنظیم کرده گفت تیکه پارتون میکنم همه تون رو با این شمشیر مثل اینکه ترازوی نومی یه تلازوی بحث انگار گا تلازویی که می‌گن تلفورشی، انگار تلازویی دقیقش، اما لامارو اندازگیری کرد. اون، انر لزی سمت نعمی هی دره کلیس قابات قلیزل قصره، اکیلو کم به سعف کیلا سندره، این سه بیت دیگه، با خب مثلا همین طور دوی آس و در میدان جنگ. می‌شلخیدن؟ و این بیت سویت رو میخواندند و به عنوان رجز این رو مطرح کرده بودند در مقابل مرحب خیلی بری حالا نگاه کنید انا لزی انا الذی مفاو سمت نعوم سمت سمت نعم بل اگه بخونیم صمت نیوم دیگه نمیشه و از خراب میشه صمت نیوم مستفعلن می حی دره فقط یه مفاعلن اوله که مخونه باشه این یه بیت کلیس قا مفاعلن کلیس قا باطن قلی باتن قلی مستفعل زل قسره مفعل زل قسر مستفعل زل تصرا مستفعل تبدیل شده به مفعل است اکی لو کم کیلوکم به صیفه کی مستفعلن لسندره مستفعلن سطر بیت بود اصلش اینه که در تفعیله سوم شما علت قطع نمی بینید به خاطر همین سالمه در تفعیل سوم می حیدره مصطف سالمه زل قصره مفتعلون مطویه است اما علت وقت نداره لسندره مصطف علم سالمه این سه تا بیت حالا یا به این شکلی که اینجوری نوشته شده نوشته میشه یا به شکل پله ای زیر هم نوشته میشه اله یه ای حال این سه بیته ان لزی سمتن اوم می حیدره کلیس قاباتن غلیز الغسره اکیلکم کن به سیف کیلستندره اناللزی مفایلون سمتن عم مصطف علون می هیدره مصطف اولی مخبونه دوتا سالم. کلیس قا مفاعلن مخبونه باطن قلی مصطف علان سالمه زل قصره مفتعلان مطمیه اکیل و کم مخبونه به سیف کی مصطف علان سالمه نستندره مصطف علان سالمه الملاح از او اونی که شما اینجا میبینید اینه انل مشتوره یکتب و علاها زیستوره مشتور به این شکل نوشته میشه حالا یا به این شکل یا به شکل زیره هم به این شکل نوشته میشه. و هوایی من فمینسلاس حیاتن، این سه تا بیت تشکیل میشه. درست شد، سه تا بیت، سه تا بیت، سه تا بیت. درست شد، و هوایی من فمینسلاس حیاتن، من باید بگم مینسلاس تعبیاتن، مینسلاس حیاتن که درست نیست که عدد سه تا نه برعکس معدودش میاد معدودش مجرور و مضافنه لکھ میاد درسته جم و مجرور و مضافنه لکھ این سلاسته باید بشه و هو یتعلف و من سلاسته عبیاتن غلطه و ان ذهاف زهاف خبن و تی و اینکه که خبن و تی قد دخل علی بعض تفعیلاته و اینکه که خبن و تیم داخل شده بر بعضی از تفعیلاتش حالا مشتور مقتوع چون بهر رجز بهر مهم نیست من یه مقدار اون رو تقریبا دارم با تکرار و با تمرین براتون کار میکنم که انشالله بتونید مبحث رو کامل داشته باشید حالا مشتور مقتوع اول مبحث جلسه بعد ما انشالله خواهد بود یه مقدار روی عبیات کار کنید چون چیز بسیار آسانیست مخصوصا با این تکرارهای بیش از حدی که من برای شما دارم و تکرار میکنم هی hey, مبحث رو که بتونید یک تا بتونم توی این روزی که امروز من درس رو گفتم یه مقدار اغلاطی رو داشت اون اغلاط رو هم انشالله توجه داشته باشید و درستش کنید و تمرین کنید تمرینش هم به این خلاصه نویسی فارسی کنید توی جزوه کوچیک دو مرتبه یه مرتبه نگاه کنید و تکرار کنید بیت رو من امروز مخصوصاً ابيات رو از نظر لغوی صرفی نحوی هم برای شما گفتم و همس اول هم همینطور بود که شما یک تمرین متون نظم و نظم و لغت و صرف و نحو و خانی هم داشته باشید که فقط صرف اینکه شما دارید وزن یاد میگیرید نباشه شعر رو بلد بشید و معنا و مفهوم اون رو بدونید تا بتونید اون رو راحتتر تختی کنید و راحتتر بخونید باز هم خدمت شما میگن در سعروز شما یاد گرفتید الان و من دارم در کنار شما تمرین میکنیم با هم ولی از همه مهمتر در در روز حفظه یعنی من هم الان اگر حفظ نباشم یک بیتی رو به من بدن الان لذه سمت نامی نا هی دره من بیام اینو تختی کنم در بیارم مصطف علون مصطف علون مصطف, علون مصطف علون ولی ندونم که مصطف علون مصطف علون مصطف علون بهر از ذهنم پریده بشه خب نمیتونم بنویسم پس بنابراین ها ما باید کلید به مطالب رو به ذهن بسپریم، حفظیات رو حفظ کنیم و این حفظیات اگر نزد ما باشه، ما این درس هر رو به طور کامل بلدیم و جای نگرانی هم نیست. پس بنابراین حفظش هم خیلی سنگین نیست. ما به شما ما گفتیم که بیایید مثلاً فرض کنید بیت‌های دیگری رو بیت‌های تمرین یا بهتون بگیم برید مثلاً از اشعار جاهلی که خوندید توی معلقات مثلاً عبیاتی رو انتخاب کنیم به اون کار حالا کاریه که شما بعد از این اینکه روز رو یاد گرفتید تو هر مرحله بخواید به کار ببرید دیگه بلدید تقدیم کنید یاد میکنید اون تمرین نداریم بلکه گفتیم که از همین مثال‌هایی که خودمون مثلا ممکنه تو امتحان همین بیت انال سمتنه یا اون بیت یا غیرتن اوهبها همین عبیاتی که خودمون کار کردیم به عنوان به شما داده میشه خب این رو باید شما خوب یاد بگیرید خب موفق و باشید سعی کنید انشالله رعایت امور رو بکنید خودتون رو از آفتی که هست دور بدارید خداوند و شما را از آفت به دور بداره. انشاءالله شرایط به گونه بشه که بتونیم حضوری در خدمت شما باشیم موفق و معید و منصور باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.